نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها درس های زندگی در اروپا گردآوری افسانه ها در ابتدا جنبه تفریح و سرگرمی داشت و نویسندگانی مانند شکسپیر و گوته در خلق آثار ارزنده خودشون از افسانه ها الها می گرفتن افثانه ای رو براتون نقل می کنم با نام افسانی نگهبانی از قبر برگرفت از کتاب بهترین افثانه های دنیا به گردآوری برادران گریم و با ترجمه از هروس شبانی روزی روزگاری کشاورز ثروتمندی در حیات خونش ایستاده بود و به مزاره و باغهاش نگاه میکرد. جایی که گندم ها کاملا شده بودند و درختان میوه در زیر بار سنگینشون سرخم کرده بودند محصول سال قبل تو انبارها ذخیره شده بود و میزان اون به قدری بود که دیوارها و ستونهای انبارها به سختی تاب بیاوردند کشاورز از اونجا به سراغ استبل هاش رفت جایی که پر از گاف میش اهلی، گاوهای های فربه و عصب های زیبا بود. کشاورز بعد به اتاق نشیمن رفت جایی که صندوق های پر از سکه های قرار داشتند. کشاورز همینطور که ایستاده بود و به مال و ثروتش فکر می کرد، یه دفعه صدای زدن عجیبی رو شنید. صدا از در خونه نبود، بلکه از قلب خودش بود که میگفت آیا با ثروت خودت هیچ کار خیر و نیک انجام دادی؟ آیا به مشکلات فقرا و, و توهی دستان رسیدگی کردی؟ آیا از سفرت به گرسنگان دادی؟ آیا به چیزایی که داری خانه یا باز هم چشم و دلت دنبال مال دنیاست؟ قلبش هم بلا فاصله پاسخ پاسختاد آه من تمام عمرم آدم بی بودم به هیچ کس خوبی نکردم هر وقت فقیری به در خونم اومد از اون رو برگردوندم هیچ وقت به خدا و آخرت فکر نکردم همیشه در این فکر بودم که چدوری ثروتمو بیشتر و بیشتر کنم اگر همه دنیا هم مال من باشه باز هم قادع نیستم کشاورز با شنیدن این پاسخ ها به شدت وحشت کرد. زانواش توس شد و نشست. در این موقع صدای در زدن دیگه ای به گوش رسید. اما صدای قلبش نبود. بلکه صدای در خونه بود. همسایش بود. مرد فقیری که چند تا بچه یک قدر قد داشت و نمیتونست شکم اونا رو سیر کنه. مرد کشاورز در که باز کرد همسایه گفت سلام. من میدونم که تو عادت نداری به فقرا بذل و بخشش کنی اما باور کنی بچه بچههای من گرستن میشه میشه چهار پیمونه آرت به من قرض بدی مرد کشاورز افسانهٔ ما چند لحظهای به همسایش خیره و بزودی اولین اشعه خورشید ترحم به سراغش اومد و گفت من هشت پیمان آرت بت میبخشم بهشرط اینکه وقتی من از دنیا رفتم سه شب در کنار قبر من نگهبانی بدی آیا این شرط قبول میکنی؟ مرد با شنیدن این شرط قلبش از نگرانی لرزید با این حال چون نیازمند بود به ناچار شرط و قبول کرد و سوگند یاد کرد که این کار رو انجام بده کشاورز هم گیسه آرد رو به اون اونتا و مرد فقیر به خونش رد کشاورز ثروتمند افثانی ما انگار از قبل میدونست چه اتفاقی قرار رخ بده چون هنوز چند روز از ماجرای سوگند یاد کردن مرد فقیر نگذشته بود که یه دفعه کشاورز بیجان جان نخش زمین شد و نفس آخرش رو کشید هیچ کس هم علت مرگ اونو نفهمید و کسی هم در جستجوی یافتن اون بر نیومد بعد از اینکه کشاورز رو به خاک سپردن مرد فقیر به یاد سوگندی که خورده بود افتاد اون خواست از زیر این سوگند شونه خالی کنه اما بعد به خودش نهیب زد که نه نه این مرد به تو با کرم و بخشش رفتار کرده و گرسنگی بچه ها تو برطرف کرده تازه تو سوگند یاد کردی و باید به وعدت عمل کنی مرد بل تصمیم گرفت به اوج شمال کنه بنابراین شب که شد به حیات کلیسا رفت و کنار قبر کشاورز ثروتمند نشست همه جا ساکت و آروم بود فقط ماه توی آسمون می درخشید. مرد تا صبح اونجا نشست و به محض اینکه خورشید طلوع کرد خسته به خونش برگشت شب دوم هم مثل شب اول به هیچ حادثه‌ای سپری شد اما اما وقتی غروب روز سوم فرارسید رسید مرد فقیر رعب و وحشتی عجیب در وجودش احساس کرد چند لحظه بعد در گورستان کلیسا چشمش به مردی افتاد که بالای دیوار کلیسا نشسته بود صورت مرد از چین و پر بود و تمام هیکرش با شنل بلندی پوشیده شده بود اون چکمه های بزرگ و سنگینی هم بباداشت مرد فقیر با دیدن مردی که بالای دیوار کلیسا نشسته بود اول کمی ترسید ولی بعد بر خودش مسلط شد و از اون پرسید ای غریبه اینجا دنبال چی می گردی؟ از این حیات مخروبه نمیترسی؟ مرد پاسخ داد نا من فقط یه سرباز ترخیص شدم که میخوام شب رو اینجا به صبح برسونم چون سرپناهی ندارم مرد فقیر به سرباز گفت پس اگه نمیترسی بیا به من کمک کن تو از این قبر محافظت کنیم سرباز گفت نگهبانی دادن از وظایف یه سربازه پس هرچه در اینجا وجود داشته باشه چه خوب و چه بد با هم با اون روبرو میشیم. مرد فقیر هم قبول کرد و اون دو با هم کنار قبر مرد کشاورز Shasta. The... Shasta. مرد فقیر افثانه ما به همراه سرباز در کنار قبر مرد کشاورز نگهبانی دادن تا نیمه شب همه چیز ساکت و آروم بود اما یه دفعه ناگهان صدای سفیری در هوا به گوش رسید و دو موجود عجیب در مقابل مرد فقیر و سرباز ایستادن یکی از آنها گفت از اینجا دوشید مردی که اینجا خوابیده متعلق به منه، من باید اونو با خودم ببرم، اگه مانع بردن اون بشید، جردن تونو میشترم. سرباز گفت، تو فرمانده من نیستی، پس لزومی نداره تو و اطاعت کنم، حالا راهت رو بگیر و از اینجا برو، ما همینجا میمونیم موجود عجیب و غریب، وقتی این حرف سرباز شنید، با خودش فکر کرد که شاید از طریق دادن پول بتونه از پس اون دو نگهبان حشیار بر بیاد. پس لحنش عوض کرد و معدبان از اونها پرسید آیا راضی هستید یکیسه پراستکه های طلا بگیرید و به خونه برگردید؟ سرباز فکر کرد و گفت فکر بدی نیست اما یک ی طلا برای ما پاداش کافی و مناسبی نیست اگه اونقدر به ما طلا بدی که یکی از شکمه های منو پر کنه اون وقت گورستان رو ترک می مرد عجیب و غریب گفت من؟ الان اون طلا هم همراه ندارم اما نگران نباشید در شهر مجاور بانداری زندگی میکنه که دوست سمیمی منه اون هر اندازه که پول بخوام به من پول قرض میده و بعد در یه هم زدن نابدیش بعد از ناپدید شدن مرد عجب سرباز چکمه پای چپش رو در آورد و به مرد فقیر گفت خب دوست عزیز حالا ما باید پوزه این مرد جنس رو به خاک بمالیم مرد فقیر پرسید جوری اون خیلی وحشتناکه سرباز گفت با این وسیله درس خوبی بهش میدیم بعد چاقویی از جیبش بیرون آورد و شروع کرد به بریدن یکی از چکمهاش اون اول پاشنگی چکمش رو کاملا برید و در آورد و بعد اون رو به شکل راست و مستقیم درست در کنار لبه قبر نیمه تمام به میون قبر فرو کرد و از زیر چکمه سوراخی رو به داخل قبر باز کرد بعد گفت خب اینم تموم شد. حالا باید منتظر بمونیم تا اون مرد جنس بیاد. سرباز و مرد فقیر به انتظار مرد عجیب و غریب کنار غرب نشستن و مشغول نگهبانی شدند. طولی نکشید که مرد عجیب و غریب در حالی که کیسه بزرگی از سکه های در دست داشت از راه رسید. سرباز گفت خب چکمه من اونجاست. زود برو و اونو پرستکه کن. اما درام میگم که این کیسه ای که آوردی چکمه منو پر نمیکنه. مرد عجب غریب کیسه سکه ها رو تا ته خالی کرد اما صد البته سکه ها از کف چکمه به داخل قبر کنار اون ریختن و هیچ طلایی داخل چکمه باقی نموند سرباز فریاد زد عجب موجود عبلایی هستی من که به تو گفتم این کیسه چکمه منو پر نمیکنه زود زود برو تلای بیشتری بیار مرد عجیب و در حالی که سرش رو از حیرت تکن میداد برای آوردن طلای بیشتر اونجا رو ترک کرد صدای خنده سرباز و مرد فقیر در گورستان کلیسا پیچید یک ساعت بعد مرد عجیب و غریب با کیسه بزرگی از سکه های برگشت برگشت. سرباز گفت زود باش. زود باش کیسه رو خالی کن ببینم چقدر تلاوردی؟ ولی م... شک دارم که هنوز کافی باشه. سکه‌ها ها موقع ریختن جرین جرین می کردن. اما چکمه ها همچنان خالی بودن. مرد عجیب و غریب با چشم آتشین به داخل چک میخیره شد و این واقعیت به چشم خودش دید بعد در حالی که چهرش رو در هم کشید با عصبانیت داد زد آخه مردک این چه پاهاگ بی غبارهیه که تو داری ها؟ تو از داشتن این پاهاگ بی خجالت خطالت نمیکشی نمی سرباز گفت مردک ابله چرا توهین میکنی پاهای من از اون چهره زشت و پرست چین و که تو که خیلی بهتره مرد فقیر هم به مرد عجیب و غریب گفت اله بهتره به جای این وراجی ها و حاضر جوابی ها بری و طلای بیشتری بیاری وگرنه نه معامل نمیشه مرد عجیب و غریب به بناچار برای بار سوم راهی شد و باز هم طلای بیشتری بیاری. ساعتی بعد مرد عجیب و غریب در حالی که در زیر کیسه بسیار بزرگی کمر خم کرده بود به قبرستون برگشت بعد تمام سکه های طلا رو داخل چکمه سرباز خالی کرد اما باز هم چکمه مثل اولش خالی باقی بود مرد عجیب و غریب که از شدت خشم و عصبانیت دیوونه شده بود سعی کرد چکمه رو از زمین بیرون بکشه تا به راز اون پی ببره اما در همون لحظه عشقه نور ظاهر شدند و خوشید شروع به بالا آمدن کرد مرد عجیب و غریب که دیگه نمیتونست اونجا بمونه با فریاد ها وحشتناک از برابر دیدگان سرباز و مرد فقیر ناپدید شد به این ترتیب بود که کشاورز ثروتمند از اون به بعد با صلح و آرامش در قبر خودش باقی موند مرد فقیر به سرباز گفت حالا حالا با این همه طلا کار کنیم بهتر تو سهم خودت رو برداری سرباز گفت نه بهتر سهم منو به فقرا و توهیدستان بدی مرد فقیر افسانی ما که حالا دیگه صاحب ثروت زیادی شده بود از این حرف سرباز خوشحال شد و با اون پیمان برادری مست افسانه نگهبانی از قبر رو براتون نقل کردم برگرفته از کتاب بهترین افسانه های دنیا به گردآوری برادران گریم و با ترجمه از هروس شبانی هست ان در صورت هر قصه‌ای خرد بینان راز معنا هستی حزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صابرپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار حامد مولا خیلی کننده زهرا عبدالله صدیه